نامه از قیصریه به بغداد شعبان 640 بسم الله الرحمن الرحیم خدمت بابا زمان محترم سلام علیکم زمان زیادی است که با چشم سر یک دیگر را ندیدیم از خدا مسئلت دارم این نامه شما و دلتان را در شادمانی بیابد از مدت ها پیش درباره زاویه‌ای که در دامنه‌های بغداد برپا کرده اید خبرهای خوبی میشنوم. و اما دلیل نوشتن این نامم مسئله است که مدت هاست ذهنم را به خود مشغول کرده و میخواهم که این مسئله بین خودمان بماند. با اجازهتان از اول شروع میکنم. همانطور که میدانی مرحوم سلطان علاءالدین قیقواد شخصیتی شایان احترام بود که در روزهای سخت به خوبی حکومت می کرد. بزرگترین آرزوی ایشان ساختن شهری بود که شاعران، هنرمندان و فیلسوفان در آن با آرامش زندگی کنند و به فعالیت بپردازند. با وجود این همه دشمنی و هر مرج موجود در دنیا و درست در هنگامه حمله ها از یک سو و مغل ها از سوی دیگر این آرزو در نظر بسیاری کسان آرزوی دست نیافتنی به نظر می رسید. تا امروز چه چیزها که ندیده این؟ مگر مسیحی مسلمان را، مسیحی مسیحی را مسلمان مسیحی را مسلمان مسلمان را سر نبرید مگر دینها، مذهبها، قبیله ها حتی برادرها با هم نجنگیدند با این حال کیقباد سلطانی با درایت بود برای محقق کردن آرزویش اونیه را انتخاب کرد یعنی نخستین شهری که پس از طوفان نوح از سطح آب بیرون آمد امروز در قونیه عالمی زندگی میکند شاید نامش را شنیده باشید شاید هم نشنیده باشید نامش مولانا جلال الدین است اما اکثرا مولوی مینامندش چه خوشبختم که او را شناختم نه فقط شناختم بلکه استادش شدم و پس از وفات پدر بزرگوارش مرشدش شدم و سالها بعد از آن نیز طلبهش شدم. چه خوش اقبالم که زانو به زانوی او نشستم و علم آموختم. بله ای حبیب من طلبه ی شدم. چنان با استعداد، چنان ممتاز و چنان استثنایی بود که همه چیز را آموخت و من چیزی برای آموختن به او نداشتم و این بار من شروع به آموختن از او کردم البته پدرش نیز عالمی کامل بود اما خود مولوی صاحب هنری است که در کمتر عالمی میتوان سراغ کرد توانایی شکافتن پوسته دین و بیرون کشیدن جوهر جهان شمول و ابدی آن. بدانید که این فقط نظر من نیست. مولوی پنج یا شش سال بیشتر نداشته که هنگام عبور از نیشابور همراه پدر به صحبت صوفی بزرگ شیخ فرید عطار رسیده و شیخ درباره مولوی با پدر او چنین گفته این فرزند را گرامی دار. زود باشد که از نفس گرم آتش در سوختگان عالم زند. ابن عربی، فیلسوف، محرر و متصوف صاحب اعتبار نیز روزی مولوی جوان را دیده بود که پشت سر پدر بزرگوارش میرفته. ابن عربی در این هنگام چنین فرموده. سبحان الله! اقیانوسی از پی دریایی می رود. مولوی هنوز بیست و چهار ساله بوده که به درجه شیخیت رسیده و امروز که درست سیزده سال از آن هنگام میگذرد گذرد قونیه او را نمونه علم و تقوا میداند روزهای جمعه آم خاص از چهار طرف صرفاً برای گوش سپردن به خطبه های مولانا به شهر سرازیر می شوند. ایشان در فقه، فلسفه، علم حیعت، کیمیا و جبر از دانشمندان بیمثال است. میگویند که از همکنون ده هزار مرید دارد. مریدانش هر کلمهی که از دهان ایشان خارج می شود در هر مدتی قبل به قیصریه نقل مکان کردم مولوی را به رقم دوری همیشه اولادم می دانم. به پدر مرحومش قول دادم که او را حتی لحظی از دعاهایم محروم نکنم لاکن من دیگر رفتنیم یک پایم لب گور است مولوی هر قدر هم که شخصیتی کامل و واقف به علمش باشد، خلعی در درونش دارد. این خلع را نه قادر است پر کند و نه مریدانش می توانند پر کنند. چند بار که حرف دلش را با من می زد، خودش نیز به آن معترف بود. به او گفتم، بدون شک از خامی دور و منزه شده ای اما در آتش عشق نپخده ای هنوز اگر قدهت لبریز از باده هم باشد باید بر روحت چنان دری بکشاید که آبهایی که میریزند و پرش می سرریز شوند هنگامی که پرسی چه باید کرد گفتم تو یک رفیق لازم داری و حدیثی را یاداوری کردم مؤمن آینه مؤمن است اگر مسئله بار دیگر مطرح نمیشد، شاید به تمامی فراموشش میکردم. اما مولوی پیش از آن که قونیه را ترک کنم خوابی را که دیده بود برایم تعریف کرد در دیاری دور در شهری شلوغ در جستجوی کسی بوده در اطرافش کلمه‌های عربی نوشته شده بوده هنگام غروب بوده روی درختهای توت کرمهای ابریشم درون پیلههایشان منتظر رسیدن زمانشان بودند. بعد خودش را در حیات خانهاش کنار چاه آب چراغ به دست دیده در فراغ کسی میگریسته ابتدا ندانستم که این خواب به چه دلالت می کند. در حرفهایش چیزی نبود که به نظر آشنا بیاید. اما یک روز به محض این که تصادفا دستمالی ابریشمی هدیه گرفتم را حل کردم. به خاطرم آمد که علاقه وافری به کرم ابریشم دارید. حرفهایی را که در باری زاویه شنیده بودم به یاد آوردم با خود گفتم جایی که مولوی در خواب دیده احتمالاً درگاه شماست خلاصه این که برادرم گمان میکنم رفیقی که مولوی در جست جویش است زیر سقف خانقاه شما به سر میبرد سبب نوشتن این نامه نیست همین است. نمیدانم هم کسی در زاویه شما هست یا نه. اما اگر چنین آدمی آنجا باشد، با شماست که او را از سرنوشتی که در انتظارش است، با خبر کنید. خوشا به سعادتمان اگر بتوانیم دو دوستدار حق را با یکدیگر آشنا کنیم. و دو دریای عشق را در بستری واحد جاری سازی. اما موضوع دیگری هم هست که باید در نظر بگیریم. مولوی فردی با نفوز و صاحب اعتبار است و دوستداران فراوان دارد. اما گمان مبرید که مخالف ندارد. علاقه مفرت مولوی به رفیقش، ممکن است در میان خانواده و نزدیکانش باعث ایجاد مسائلی بشود آدمی که شخصیتی پرطرفدار مانند مولوی دوستش داشته باشد حسادت کسان را برخواهد انگیخت این مسائل ممکن است رفیق عزیزتر از جان مولوی را به مخاطره بیندازد به عبارت دیگر برادرم شخصی که به قونیه میفرستی ممکن است باز نگردد. بنابراین از شما میخواهم پیش از یافتن آینه روح و همراز مولوی و خواندن این نام برو درباره این مسئله خوب بیندیشید از اینکه زحمتتان می دهم مرا ببخشایید اما هر دو میدانیم، که خدا به بنده باری را نمی دهد که توان حملش را نداشته باشد. روزهای این فقیر به شماره افتاده. ممکن است هنگامی که نامه جوابیه اتان می میرسد از این عالم رهلت کرده باشم. اما نتیجه هرچه چه باشد کاملا مطمئنم که راه درست را انتخاب خواهید کرد. شفاعت و مرحمت خدا بر زاویه تن برقرار باد شیخ سید برهان دین